برگ عروسی آقای مددی و خانم کتابدار هم رسید برای همه اینجا گذاشته بودم کو؟ اینجا اصلا پی چه چیز میگردم الان آمدم به تو چه بگویم؟ میخواستم چه کار کنم؟ آمدم اینجا که چه چیز را بردارم؟ آه چقدر خوب است که انسان حافظه را لاقل، حافظه را مثل یک ساعت مچی در اختیار ندارد. اگر حافظه دائم فعال باشد، در واقع به ثانی شمار ساعت زمان تبدیل می شود. نمی خواهم از حافظه مدد بگیرم. می خواهم بسازم. نمی خواهم تقلید کنم. می خواهم پیدا کنم. نمی خواهم بدانم که کجاست؟ آه کیفم کو. کلاهم هم کو. کلید کو. عینک کو؟ بس کن پیر مرد: اینقدر دور خودت نچرخ. دیگر چیز خیلی به درد بخوری برایت نمانده که گم کنی. پیر مرد را دوست ندارم. تو میدانی که پیری در روح است، نه در سال. پدر تو صد سال هم بیشتر دارد. اما دل جوان و قبراغ است. با این اصطلاح ناخوشایند، جوانیم را مورد تهاجم قرار نده و اوقاتم را تلخ نکن. چشم گیل مرد. شنبهها ها اصولا خوب نیست که از هم دلگیر شویم. دلگیری شنبه سایش را روی تمام هفته می اندازد. یک شنبه ها هم البته باید سعی کنیم که هیچ اوقات تلخی پیش نیاید. دو شنبه ها و سه شنبه ها هم تمام روزهای هفته ماه، سال ما باید بسیار پرهیز کنیم از اینکه به ریسمان پوسیده تکواژ و جمله های سست بیاویزیم و از آنها مستمسکی بسازیم. ما باید پرهیز کنیم از اینکه که با دستاویز کلمات و جمله‌ها ها برخوردی ایجاد کنیم. کلمات همیشه است برای بحان جویان، نه برای عاشقان. میدانم اصل که بخش عمده هستی زبان است و میدانم که با کلمه چه کارها میتوان کرد. اما ما در زندگی روزمره امکان بهترین گزینش‌ها ها را دمادم در اختیار نداریم. گاه از سر خشم، گاه از سر بیخیالی و بیغیدی، گاه از سر تسامح و گاه به دلیل تهاجم یک احساس، واژههایی را به کار میبریم که به کار بردن آنها جرم است. احتیاط باید کرد. حرمت هر کلمه تنها هنگامی آشکار می شود که آن کلمه را در جایگاه راستین خودش به کار گیریم، نه بر اثر لغزش ها. روزی شاید انسان بتواند کلمات را چنان بتراشد که هر کلمه فقط یک حفره ذهن را پر کند شاید کلمه پدر بزرگ را دوست دارم و این را که بچه ها فریاد زنان مرا پدر بزرگ بنامند و از من اسباب بازی های گوناگون بخواهند اما مادر بزرگ برای تو بسیار زود است من هنوز از اینکه که برخی مردان بد نگاه تو را گونه نگاه می کنند در عذاب علیمم محبوب من دوست ندارم که نوه های من تو را ما در بزرگ بنامند به آنها اصل را بیاموز اصل خالص را کاری کن که تا زنده ام هیچ چیز روی این واژه را نپوشاند در نگارخانه سبز میخواهند نمایشگاه مشترکی از آثار من و تو بگذارند. آن شب تو باز همچو الماس خواهی درخشید. همکار زیرپله ما با زنی که شوهرش را در جنگ از دست داده عروسی میکند. تو باید عروسیشان را راه بیاندازی و زندگیشان را رو به راه کنی. شنبه شبها یک هفته در میان می به خانه دخترمان برویم و یک هفته در میان به خانه پسرمان. من عاشق تو هستم. من عاشق تو هستم. من عاشق تو هستم. اصل، بیا عینکت را بیاور. نگاه کن ببین که این نامه کوتاه را من برای تو نوشتم یا تو برای من نوشته ای. این نامه به خط من است یا به خط تو، چه فرقی میکند گیل مرد دیگر چه فرق میکند به هر حال ما برای هم نوشته ایم و همین کافی است بله درست است ما برای هم نوشته ایم عجب کشفی کردی اصل بانو هیچ فرقی نمیکند حالا چه کارش کنم این را دورش بینداز گیل مرد دورش بینداز به درد هیچ کس نمی خورد. و بهتر است که بچه ها هم با خورد خاطرات پراکنده ما هیچ کاری نداشته باشند بله اصل بانو. راست میگویی. هرگز آرزوی زندگی دیگری را نداشتم هرگز گرچه در متن این زندگی روزها و شبهایی را داشتم که درد از لبه همه سوی این ظرف سرریز کرده است و تنها های های گریه توانسته مرا چنان تخلیه کند که اندیشه سرشار از دناعت خودکشی را از سرم برانم هرگز آرزوی زندگی دیگری را نداشتم و وصول به چنین جایگاهی مطلقاً مقدور نبود مگر در پناه زنی که آرام و با وقار میگوید این مهم است که هیچ چیز هرگز ما را نشکسته است تو را و مرا اصل میگوید فرو رفتم بیرونم بیاور زیر بار چون این ای کمرم شکست از هیچ چیز خوبی نباید پوشی کرد بله اما وقتی این همه گسترده شدی دیگر هیچ چیز نخواهی شد خلاف واقعیت است یک بار به توافق رسیدیم، بیست سال پیش، دیشب، امروز صبح، انسان وقت بسیار زیادی را می سوزاند و تباه می کند. ما هرچه بخواهیم می توانیم بشویم. استعداد بزرگترین است که انسان به خیش گفته است. به خدا شلوغ کرده گیل مرد و باز همداری شلوخترش می کنی. با برنامه هرگز شلوغ نمی شود این برنامه را که نمی شود به دیوار کوبید به دیوار زندگی چرا؟ می شود کوبید هر شنبه تا وقتی از بر ایم باز می خانیمش. یا قسمتی از آن را اصل دیگرگون کردن چنان زندگی از هم پاشیده آشفته از شور افتاده ای بدیهی است که همچون نجات غریقی از قلب دریا قدری سخت است اصل بانو ما چیزی را که به عادت زندگی مینامیم به حال خیش سپردیم سپرده بودیم ما مهار زندگی را رها کرده بودیم و آنگاه قمگنانه دیدیم که زندگی به راهی میرود که دلخواه ما نیست و هیچ شباهتی به آنچه ما میخواهیم ندارد. ما مانده بودیم یا خیشتن را بیخبر نشان دادیم از اینکه زندگی فی نفسه آری از فرهنگ و عقل و عاطفه است و زندگی چیزی نیست الا مجموعه حرکت هایی که ما میکنیم. ما تقلید شطرنج بازان اندیشمند را درآوردیم. ماهرانه و مسلط بازی نکردیم، ما شطرنج را چیدیم، در سوی آن نشستیم و به متفکرانه و عمیق به آن خیره شدیم و روشن نشان دادیم که سخت سرگرم حل پیچیدگی ها هستیم، اما هیچ، هیچ، هیچ حرکتی که واقعا حرکت باشد انجام ندادیم و آنگاه حیرت زده دیدیم که هیچ مهرهی حرکت نمیکند و جا, جا نمیشود و وضعیت را دگرگون نمیکند. اصلاً اصلا حریفی در کار نبود و نیست که ما را مات کند. ما خود پات بی حرکتی های خود شدیم بی آن که حتی حس کنیم که من و تو نمی بایست در دسوی صفحه بنشینیم. مسائل در مقابل ما بود و ما ندانستیم یا خود را به ندانستن زدیم. ما شاید در ابتدا حرکت هایی هم کردیم، یاری هم و لذت بردیم. شاید برای خودمان هم کف زدیم و جشن گرفتیم و عاشقانه به هم نگاه کردیم و نشان دادیم که نیروی عشق میتواند مهره ها را به بهترین شکل ممکن جابجا جا کند. بی آنکه حتی بفهمیم که عشق حرکت دو نفر مشتاقانه به سوی هم نیست بلکه حرکت دو نفر در کنار هم است و بعد ظاهراً به هر دلیل و شاید به این دلیل که به عینه حریفی در برابر خود نمیدیدیم، به همان چند حرکت عجولانه خود نمایان قناعت کردیم و این شد که به این روز افتادیم ما با شور و هیجان و شتاب، گیاهی را که عاشقش بودیم یا اسمش عشق بود کاشتیم. اما قطهای قدرره آبهایان نچکاندیم جوی باری که سیر کننده که هیچ و آنگاه مبهوت این ماندیم که چرا گیاه مقدس ما در روند خشک شدن است. و بعد عصبانی شدیم و رنجیده و افسرده، و صدایمان به خانه همسایه رفت.